اگر کسی از پس نفسش بر نیاید و از خودش ناامید میشه این همون گناه است ناامیدی از خود همون ناامیدی از رحمت خداست بله بله ناامید شدن یعنی یأس یعنی قنوط یعنی. قنونت با ته مغلب ته تنابیل به کلی بچه ها یعنی از خدا پیدا کردن از گناهان خیلی بزرگی همین که زنده هستیم نشانه این هست که خدا انایت داره به ما و باید از این فرصت استفاده کرد مسیر بد رو زمینه هاش رو پیش برد و از خدا بخواد که انسان خدا کمکش کنه یه راه برون رفتی از این بدی ها و رسیدن به خوبی ها رو ایجاد کنه خدا باید با دست خودمون خودمون رو نجات بدیم ما کاری که از دستمون برمیاد این هست که زمینه گناه رو برای خودمون ایجاد نکنیم. بقیارش دیگه دست خداست. و خدا کمکت می‌کنه حتماً.